سپاسگزارم که با ما همراه هستید فرشید نسولایی هستم و خبرهای دانمارک در هفته گذشته رو به سم شما میرسانم با ما همراه باشید بزرگترین لاک جهان در دانمارک یک لاک پشت قول پیکره گالاپاسکوس بزرگترین نمونه زنده موجودات جهان به شمار می آید. از باقوش زوریخ کشور سوئیس به باقوشی در شیلند منتقه شد حمله ویروس باج افسار ویروس های باج افسار ویروس های جدیدی هستند که از چند روز پیش در دانمارک دست کم دو شرکت بزرگ را قربانی کرده این ویروس با قفل کردن اطلاعات افراد برای آساسازیشان از آنها پول میخواهد به زودی آغاز به کار اتوبوس های بدون راننده در دانمارک کشور دانمارک به جمعیت فاینده ای که تمایل به استفاده از پتانسیل اتوبوس های بدون راننده دارد کشور دانمارک از جمله کشورهایی است که در چند ماه آینده اتوبوس های بدون راننده در آن تردد خواهند کرد از روز اول یولی سازمان راهن و اتوبوس دانمارک برنامه تابستانیش را آغاز کرد در کنار بهای ارزان، برخی از بیلیت های قطار در ساعات شلوغ آمده شد، کاهش خواهد یافت. برای مسافرت به خارج از دانمارک کارت بیمه آبی همراه داشته باشید. اگر قصد مسافرت به خارج از دانمارک را دارید، باید کارت بیمه آبی رنگ را داشته باشید چون کارت‌های زرد در دیگر کشورها ارزشی ندارد. با گذشت دو هفته از پایان هزینه رومینگ در اتحادیه اروپا که زیان بزرگی برای شرکت های است چندین اپراتور دانمارک هزینه خدمات خود را افزایش دادند. جشن خیابانی و پایان تحصیلی دبیرستان در دانمارک، روزهای سال تحصیلی به پایان خود می رسد و تابستان دوست داشتنی آغاز می شود هفته جاری در دانمارک برای هزاران دانش و تحصیل سال آخر دبیرستان هفته شاد می‌باشد. جشنی که چهره‌ی خیابان‌های کپنهاگ و دیگر شهرهای دانمارک را به کلی دگرگون می‌سازد. نوجوانان سال آخر دبیرستان با دوران مدرسه و قسمتی از زندگی خود در یک مراسم خدافیسی پراحساس برای همیشه وداع می‌کنند. نوجوانان سال آخر دبیرستان در دانمارک در سنتی قدیمی خود قدرت‌هایی را با گل و سبزه تزیین، در حالی که بلنگو پرقدرت در آن موزیک می نوازد به همراه خانواده و دوستان با لباس و کلای زیبایی در شهر به رقص و شادی می‌پردازند. در شیلند دانمارک آغاز به کار کرد فستیوال قسکیله از سال 1971 تا کنون اواخر ماه یونی هر سال فستیوال بزرگی در اطراف شهر بسگیده دانمارک با شرکت بیش از یک هزار جوان از سراسر جهان برگزار می شود. با اینکه در چهر سال گذشته دانمارک در چنین روزهایی آب و هوای مناسبی نداشت با این وجود هر ساله بر تعداد شرکت کنندگانش افسوده می شود. محل فستیوال در زمین بازی به وسعت چندین هکتار در کنار اتوبان این شهر برقرار می شود. هاچان افتتاح رسمی فستیوال روز شنبه است و تا غروب شب هفته آینده ادامه می آید ولی عملا فستیوال گسترده به نه روز به طول می انجامد. یک خبر از آهوس شنیده شدن صدای تیراندازی در بازار آوس دانمارک عصر شنبه گذشته صدایی شبیه گلوله در بازار وست شهر آوز موجب ترس و وحشت مردم شد شبکه تلویزیونی دیاریت در خبری فوری گزارش داد صدای مهیب شلیک متوالی گلوله در بازار وست شهر آوز شنیده شد تا کنون جزیات بیشتری در خصوص این حادثه منتشر نشده است راسلوکه در مقابل دونالد ترامپ ایستاد آرس نخست وزیر دانمارک یکی از معدود سران اروپا است که در اجلاس سران ناتو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به چالش کشید روزنامه پلیتیکن روزی یکشنبه نوشت دونالد ترامپ از سران اتحادیه اروپا به خاطر عدم افزایش بودجه نظامی خود انتقاد کرد و از آنها خواست به سوء استفاده از مالیات دهندگان آمریکا پایان دهد. و خشدار وزیر امور خارجه دانمارک درباره انزوای آمریکا وزیر امور خارجه چند روز پیش در جلسه وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی OECD گفت آمریکا یک سیاست انزوا در پیش گرفته و باید به مسیر قبل بازگردد آقای سامیول لسن گفت آمریکا مسیر اشتباه را برگزیده و حقش است که از آن انتقاد شود باید به با آنها یادآوری کرد با منظوی کردن خود چیزی عایدشان نخواهد شد دفاع تلویزیون دی آر از جشن رمزان راژیو تلویزیون دانمارک دی آر به مراسبت عید فطر جشنی برگزار کرد اما این جشن مورد انتقاد حزب مردم دانمارک قرار کرد این حزب دی آر را متهم به چاپلوسی اقلیت مسلمان و نقض میراس مسیحیت دانمارک نمود لونسمنز سخنگوی دیار ضمن رد این اتهام گفت دیار به مناسبت های مختلف و جمله ترین روز سال هالیون و غیره جشن برپا کرده و حاضر نیست این زمینه کوتاه به یاد حتی اگر به مزاق برخی از سیاستمداران خوش نیاید رئیس خزب راستگرای محافظه محافظه کار نو گفت وی مخالفتی با جشن گرفتن مسلمانان ندارد اما نه از بودجه عمومی وی گفت وقتی که دیار عید فطر را با بودجه عمومی جشن میگیرد، مراسم بزرگداشت دینی را برگزار میکند که با ارزشهایی که جامعه ما برانستوار از مخالف است دیار باید مسلمانان را به جشن کریسمس و عید پاک دعوت کند تا با سنت ها و ارزشهای دانمارک آشنا شود یولند پوست نوشت مخالفت با ممنوعیت منابع خارجی برای ساخت مسجد در دانمارک حزب مردم دانمارک ار از انگرستوربگ وزیر همگرایی خواسته بود ورود منابع مالی خارجی برای ساخت مسجد در این کشور را ممنوع اعلام دارد اما وزیر در جلسه دیروز درباره هدایای خارجی برای انجمنهای دینی گفت چنین ممنوعیتی تبعیض علیه مسلمان ها خواهد بود وی در عین حال گفت باید راه دیگری پیدا کرد تا از تأمین مالی مساجد دانمارکی توسط قدرتهای خارجی ممانعت باید اسب دموکرات از پیشنهاد حزب مردم دانمارک حمایت کرده بود. حفره کانال زیرزمینی بین دانمارک و سوئد مقامات دانمارک و سوئد کارگروهی را برای مطالعه درباره حفره کانال زیردریایی بین دو شهر بندری هلسینگور در دانمارک و هلسینبورگ در سوئد معروف به ارتباط اچ تشکیل دادن. در حال حاضر دو شهر کوپنهاگ و بندر سوئدی مالمو از طریق پل روی دریای بالتیک به یکدیگر متصل شدند. هلسینگور و هلسینگبورگ به ترتیب در فاصله 40 کیلومتری و 65 کیلومتری شمار کوپنهاگ و مالمو واقع شده است. تصویر منفی دانمارک مانع ورود مغزها شرکت‌های دانمارکی به شدت به, نی... به نیروی کار ماهر و متخصص خارجی نیازمندند اما تصویر منفی دانمارک این مغزها را از آمدن به دانمارک باز می‌دارد اگرچه دانمارک به عنوان بهترین کشور برای زندگی معرفی شده اما ینسن وزیر دارایی از آن داشت که آوردن مغزها به دانمارک با چالش روبرو شده است وی در مصاحبه با بولنبرگ گفت که گرچه دانمارک به نیروی کار متخصص خارجی نیاز بنده است اما این تصویر در از آن ایجاد شده که دانمارک کمتر از یک اف... کم... که دانمارک کمتر از این افراد استقبال میکند از جمله قانون زیورالات که طی آن به پلیس اجازه داده شد پول نق و زیورالات پناهجوان را ضبط کند تصویر خوبی از دانمارک در از آن ایجاد نکرده و توجیه سخت است دانمارک با ائتلاف احزاب راست اداره می میشود، اما نیاز به حمایت حزب مهاجر ستیز مردم دانمارک دارد. به همین دلیل مقررات مهاجرت در سالهای اخیر به اعتراف خود دولت 64 برابر سختتر شده است. دولت دانمارک رشد اقتصادی یک و هفت درصدی را پیش کرده. آقای ینسن گفت ما به آسانی میتوانیم نیروی کار مورد نیاز را با کاهش نرخ مالیاتی فراهم کنیم، اما کاهش مالیات در این کشور مخالفان زیادی دارد. بنابراین نیاز به تأمین نیروی کار از خارج بسیار حیاتی خواهد بود در همین حال صندوق بین پول نیز از دولت خاص در برنامه اصلاح نیروی کار نرخ مالیات را کاهش داد اختلاف کیفیت در دانشگاه های دانمارک وزارت علوم و تحقیقات با استناد به یک تحقیق جدید و با در نظر گرفتن چشم انداز اشتغال فارغ تحصیلان دانشگاه های دانمارک، رتبهبندی و کیفیت آنها را تعیین می‌کند. در این تحقیق، سطح اشتغال و فاصله زمانی بین فارغ تحصیلی و کسب اشتغال برای تمام فارغ تحصیلان دانشگاه های دانمارک با در نظر گرفتن سن، تفاوت‌های منطقه‌ای در بازار کار و سابقه کار مقایسه شده است. در این گزارش آمده که دوره‌های ادبیات، فلسفه و فرهنگ دانشجویان را برای اشتغال آماده نمی‌کنند. اما وزیر از تفاوت دانشگاهی ابراز نگرانی کرد و گفت ها باید در افزایش کیفیت آموزشی خود تجدید نظر کنند. به عنوان مثال، فارغ تحصیلان دانشگاه جنوب دانمارک در کسب اشتغال 12 درصد نسبت به میانگین سراسری بهتر عمل کردند، در حالی که همتایان آنها در دانشگاه کوپناک سه درصد پایین تر از آنها قرار دارند. وزیر در تفاوت و این تفاوت را به پای کیفیت آموزشی دانشگاه ها نوشته در حالی که اسکو وزیر رئیس دانشگاه سنتی دانمارک هشدار داد که آمار اشتغال بهترین سنجج کیفیت دانشگاه ها نیست تندرستیتون پایدار عزیزان ممنون که با ما همراه بودید